مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد قصه سلطان محمود و غلام هندو رحمت الله علیه گفته است ذکر شه محمود غازی سفته است که از غذای هند پیش آن حمام در غنیمت افتادش یک غلام پس خلیفش کرد و بر تختش نشاند بر سپه بگزیدش و فرزند خاند طول و عرض و وصف قصه توبتو در کلام آن بزرگ دین بجو حاصل آن کودک بر این تخت نزار شسته پهلوی قباد شهریار گریه کرده اشک میرانده بسوز گفت شه او را که ای پیروز روز از چی گری دولتت شد ناگوار؟ فوق املاکی قرین شهریار تو بر این تخت و وزیران و سپاه پیش تختت صف زده چون نجم و ماه گفت کودک گریم زان است زار که مرا مادر در آن شهر و دیار از تو هم تهدید کرده هر زمان بینمت در دست محمود ارسلان پس پدر مر مادرم را در جواب جنگ کرده کین چه خشمست و عذاب می نیابی هیچ نفرین دگر زینچونین نفرین محلک سهلتر سخت بیرحمی و بس سنگین دلی که بسد شمشیر او را قاتلی من ز گفته هر دو حیران گشتمه در دل افتادی مرا بیم و غمه تا چه دوزخ خوست محمود ای عجب که مسل گشته است در ویل و کرب من همه لرزیدم از بیم تو قافل از اکرام و از تعظیم تو. مادرم کو تا ببیند این زمان مرمرا بر تخت ای شاه جهان. فقر آن محمود توست ای بی ساعت، از او دایم همه ترساندد. گربدانی بدانی رحم این محمود راد خوش بگویی عاقبت محمود باد فقر آن محمود توست ای بیم دل کم شنوزین مادر تبع مزل چون کار فقر گردی تو یقین همچو کودک عشق باری یوم دین؟ گرچه اندر پرورش تن مادر است لیک از صد دشمنت دشمنتر است تن چو شد بیمار دارو جوت کرد برقوی شد مرتو را تاغوت کرد چون زره دان این تن پرحیف را نیشتا را شاید و نه صیف را یاره بد نیکوست بهر صبر را که گشاید صبر کردن صدر را صبر مه باشب منور داردش صبر گل باخار از فرد داردش صبر شیر اندر میان فرس و خون کرده او را ناعش ابناللبون صبر جمله انبیا با منکران کردشان خاص حق و صاحب قرآن هر را بینی یکی جامعه درست، دان که او آن را به صبر و کسب جوست. هر که را دیدی به رهنه و بینوا هست بر بی صبری او آن گوا. هر که مستوحش بود پر غصه جان کرده باشد با دغای اقتران. صبر اگر کردی و الف با وفا از فراق او نخوردی این قفا خوی با حق ساختی چون انگبین با لبن که لا احب بل آفلین لاجرم تنها نماندی همچنان کاتش مانده براه از کاروان چون زبی صبری قرین غیر شد در فراقش خور غم و بی خیر شد صحبتت چون هست زر دهدهی پیش خاین چون امانت می نهی خوی با او کن کمانت های تو ای من آید از افول و از اتو خوی با او کن که خو را آفرید خویهای انبیا را پرورید بر بدهی رمه باز دهد پرورنده هر صفت خود رب بود بر رپیش پیش گرگ امانت می نهی گرگ و یوسف را مفرما هم رهی. گرگ اگر با تو نماید رو بهی هین مکن باور که ناید زو بهی. جاهلر با تو نماید همدلی، عاقبت زخمت زند از جاهلی. او دو آلت دارد و خونسا بود. فعل هر دو بیگمان پیدا شود. او زکر را از زنان پنهان کند، تا که خود را خواهر ایشان کند. شله از مردان کف بنهان کند، تا که خود را جنس آن مردان کند. گفت یزدان زانوس مکتوم او، شله سازیم بر خرطوم او، تا که بینایان ما زانزودلال دلال در نیایند، از او در جوال، حاصلان که از هر زکر ناید نری هین ز جاهل ترس اگر دانش وری دوستی جاهل شیرین سخن کم شنا کن هست چون سم کهن جان مادر چشم روشن گویدات. جزغم و حسرت از آن نفزویدد. مرپدر را گوید آن مادر جهار که ز مکتب بچه شد بس نزار. از زن دیگر گرش برده ای این جور و جفا کم کرده ای. از جز از تو گر این بچه این فشار آن زن بگفتی نیز هم. هین به جهزین مادر و تیبای او، سیلی بابا به از او. هست مادر نفس و بابا عقل راد، اولش تنگی و آخر صد گشاد. عیدهنده عقل ها فریاد رست. تا نخواهی تو، نخواهد هیچ کس. هم طلب از توست و هم آن نیکویی. ما کییم؟ اول توی، آخر توی. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تراش. از این حواله رغبت افزا در سجود کاهیلی جبر مفرست و خمود جبر باشد پر کاملان جبر هم زندان و بند کاهلان همچو آب نیل دان این جبر را آب مؤمن را و خون مرگبر را بال بازان را سوی سلطان برد بال زاغان را به گورستان برد بازگرد اکنون تو در شرح آدم که چوپا زهر است و پنداریش سم همچو هندو بچه هین ای خاجتاش روز محمود ادم ترسان مباش از وجود ترس ککنون در آن خیالت لاشه و تو ای. لاشه بر لاشه عاشق شده است هیچنه مر نی را ره زده است چون برون شد این خیالات از میان گشت نامعقول تو بر تو عیان لیسا للموزین هم الموت انما لهم حسرت الفوت راست گفتستان سپهدار بشر که هر آنکه کرد از دنیا گذر نیستش درد و دریغ و غبن موت بلکه هستش صد دریغ از بحر فوت که چرا قبله نکردم مرگ را مخزن هر دولت و هر برگ را قبله کردم من همه عمر از حوال آن خیالاتی که گم شد در عجل حسرت آن مردگان از مرگ نیست زانست کندر ها کردیم ایست ما ندیدیم اینکه آن نقش است و کف کف ز دریا جنبد و یا بد الف چون که به رفگند ها را به بر تو به گورستان رو آن کفها نگر پس بگو کو جنبش و جولانتان بر افگنده است در بحرانتان تا بگویندت بلب نه بل بهال که ز دریا کن نه از ما این سوال نقش چون کف کی بجنبد بی ز موج خاک بی باد کجا آید بروج چون غبار نقش دیدی باد بین، کف چو دیدی قلزم ایجاد بین. هین ببین که از تو نظر آید بکار، باقیت شهمی و لحمی پود و تار. شهم تو در شمعه ها نفزود تاب، لحم تو مخمور را نامد کباب. در گداز این جملتن را در بسر در نظر رو در نظر رو در نظر یک نظر دو گز همی بیند زرا یک نظر دو و روی شاه در میان این دو فرق شمار، سرمج و والله اعلم بسرار چون شنیدی شرح بهر نیستی کش دایم تا برین بر ایستی چون که اصل کارگاه آن نیستیست که خلاب و بینشان است و توهیست جمله استادان پی اظهار کار نیستی جویند و جای انکسار لاجرم استاد استادان سمد کارگاهش نیستی و لا بود. هر کجا این نیستی افزونتر است، کار حق و کارگاهش آن سر است. نیستی چون هست، بالا این طبق، بر همه بردند درویشان سبق. خواست درویشی که شد به جسم و مال، کار فقر جسم دارد. نه سؤال، سایل آن باشد که مال او گداخت، قانه آن باشد که جسم خیش باخت. پس ز درد اکنون شکایت بر مدار، کوست سوی نیست، اسب راهوار. اینقدر گفتیم، باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود، رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. اصل خود جذب است، لیکه خاجتاش، کار کن، موقوف آن جذبه مباش. زان که ترک کار چون نازی بود، ناز که در جان جانبازی بود، نه قبولندش نه رد ای غلام امر را و نعی را میبین مدام مرغ جذبه ناگهان پررد ز اش چون بدیدی صاب شم آنگه بکش چشمها چون شد گزاره نور اوست مغزها ها میبیند و در این پوست، بیندن در زره خورشید بقا، بیندن در قطره کل بر را. بار دیگر رجوع کردن به قصه صوفی و قاضی گفت صوفی در قصاص یک قفا سر نشاید با دادن از اما، خرقۀ تسلیم اندر کردنم بر من آسان کرد سیلی خوردنم دی صوفی خسم خود را سخت زار گفت اگر مشتش زنم من خسموار او با یک مشتم بریزد چون رساس شاه فرماید مرا زجر و قصاص. خیمه ویران استو بشکسته و تد او بهانه می جود تا در فتد بحر این مرده دریغ آید دریغ که قصاصم افتدن در زیر تیغ چون نمی کف برخسم زد از مشان شد که کشسوی قاضی برد که ترازوی حق و کایلاش مخلص است از مکر دیو و هیلش هست او مقراز احقاد و جدال قاطع جنگ دو و قیل و دیو در شیشه کند افسون او فتنها ساکن کند قانون او چون ترازو دید خسم پرتمع سرکشی بگذارد و گردد تبع بر ترازو نیست گر افزون دهیش از قسم راضی نگردد آگهیش هست قاضی رحمت و دفع ستیز قطره از بحر عدل راست خیز قطره گرچه خرد و کوته پا بود لطف آب بحر از او پیدا بود از غبار ارپاک داری کل را توز یک قطره ببینی دجله را جزوها بر حال کلها شاهد است تا شفق غماز خورشید آمده است آن قسم بر جسم احمد راند حق، آنچه چه فرموده است کلا و شفق. مور بر دانه چرا لرزان بوده، گر از آن یک دانه خرمندان بوده. بر سر حرف آ که صوفی بیدل است، در مکافات جفا مستعجل است، ای تو کرده ظلم چون خوشدلی، از تقاضای مکافی غافلی، یا فراموشت شده است از کرده هات آویخت او او غفلت گرنه خصمی هاستی اندر قفات جرم گردون رشک بردی بر صفات لیک محبوسی برای آن حقوق اندک اندک آزر میخوا از حقوق تا به با یک نگیرد محتسب آب خود روشن کنکنون با محب رفت سوفی سوی آن سیلی زنش دست زد چون مدعی در دامنش اندر آوردش بر قاضی کشان، کینخر ادبار را برخر نشان، یا با زخم دره او را دهجزا، آنچنان که رأی تو بیند سزا، کان که از زجر تو میرد در دمار، بر تو تاوان نیست، آن باشد جبار، در حد و تعذیر قاضی هر که مرد نیست بر قاضی زمان کو نیست خورد. نایب حق است و سایه عدل حق آینه هر مستحق و مستحق کو ادب از بحر مظلوم می کند نه برای ارزو و خشم و دخل خود، چون برای حق و روز آجل است گر خطای شد دیت بر آقل است آنکه که بحر خود زند او زامن است بان بهر حق زند او آمن است گر پدر زد مر پسر را او بمرد آن پدر را خون ها باید شمارده. زان که او را بهر کار خیش زد، خدمت او هست واجب بر بربلده. چون معلم زد صبی را شد تلف، بر معلم نیست چیزه، لا تخف. کن معلم نایب افتاد و امین، هر امین را هست حکمش همچنین. نیست واجب خدمت بر برو. پس نبود استا بزجرش کار جو. پدر زد او برای خود زده است. لاجرم از خون بها دادن نرست. پس خودی را سر ببر ای زلف قار. بی خودش و فانی درویشوار چون شدی بی خود، هر چی تو کنی، ما رمیت از رمیت ایمانی. آن زمان بر حق بود، نه بر امین. هست تفصیلش به فقه اندر مبین. هر دکان راست سودای دگر، مصنوی دکان فقر است ای پسر. در دکان کفشگر چرم است خوب، قالب کفش است اگر بینی تو چوب. پیش بزازان قض و اتکن بود، گز باشد اگر آهن بود، مصنوی ما دکان وحدت است. غیر باهد هرچی بینی آن بوت است. بوت ستودن بحر دام آمرا همچنان دن کلغرانی قل اولا خاندش در سوره و نجم زود لیک آن فتنه بود از سوره نبود جمله کفار آن زمان ساجد شدند هم سر بود آنکه که سر زدند بعد از این حرف است پیچا پیچ و دور با سلیمان باش و دیوان را مشور هین حدیث صوفی و قاضی بیار بانستم کار زار زارزار گفت قاضی ثبت العرش ای پسر تا برو نقش کنم از خیر و شر کو زننده کو محل انتقام این خیال گشته است اندر سقام شر بهر زندگان و اغنیه شرع بر اصحاب گورستان کجاست؟ آن گروه کس فقیری بی سرند، صد جهت زن مردگان فانی ترند. مرده از یک روست فانی درگزند، صوفیان از صد جهت فانی شدند. مرگ یک قتل است و این 300 هزار، هر یکی را خونبههای بی شمار گرچه کشت این قوم را حق بارها ریخت بهر ها انبارها همچو جرجیسند هر یک در سرار کشته گشته زنده گشته بار کشته از ذوق سنان دادگر می بسوزد که بزن زخم دگر وله از عشق وجود جان پرست کشته بر قتل دوم عاشق تر است. گفت قاضی من قضادار هیم حاکم اصحاب گورستان کیم. این به صورت گرنه در گورست پست گورها در دود مانش آمده است بس بدیدی مرده اندر گور تو گور را در مرده بین ای کور تو گرز گور خشت بر تو افتاد آقلان از گور کی خواهند داد گرد خشم و کینه مرده مگرد هین مکن با نقش گرمابه نبرد. شکر کن که زنده تو نزد. کن که زنده رد کند، حق کرد رد. خشم احیا خشم حق و زخم اوست. که به حق زنده است، آن پاکیزه پست. حق بکشت او را و در پاچش دمید، زود قصابانه پوست از وی کشید نفخ در وی باقی آمد تا معاب نفخ حق نبود چون نفخ آن قصاب فرق بسیار است بین نفختین این همه زین است و آن سر جمله شین این حیات از وی و شد مزر، بان حیات از نفخ حق شد مستمر،